دلم نمیاد این قصه رو نگم چون رفقا گفتن بگو دوباره تکرار بکن گفتم چاش تو مشهد براشون گفتم ممکنه دوستان نبودن اونجا نش دیدن دوباره عرض بکنم این قصه خیلی با دل من 10 بارم گفتم باز برای خودم تازگی داره ها خیلی هم با دل من بازی کرده مترجم تفسیر شریف ارمیزان این بزرگوار جناب آسد محمد باغر مصوی حمدانی به رحمت خدا رفته سه چهار ساله ایشون این قسطر رو نقل میکرد من از اقوام و خانوادشون جویا شدم این قسطر رو آیا آقا گفته گفتن بله آقا این قسطر رو تعریف کرده علی نابیه تو حمدان در محله که الان کنار مسلای فعلی حمدان به نام جنداب در این محله زندگی میکنه اسمش علیه چون تو این محله زندگی میکنه بهش میگن علی ایش میگن علی گندابی علی گندابی قیافه بسیار زیبا و خوشگلی داشته چشای زاق، موهای بور یه کلاهی هم سرش میذاشته کلا پشمی به این زیباییش می‌افزوده اما لات بوده ولی یه جو معرفت و مرام هم ته دلش بوده جلو خونه نشسته داره قلیون میکشه یه وقتی یه خانومی که تازه شوهر کرده وایساده داره به این علی نگاه میکنه علی هم تیپی زده خوشگله دیگه آی جوون حق نداری یه جوری تیپ بزنی که نامحرم به تو خوب نگاه بکنه ها معمولی عادی علی گندابی بلند شد موهاشو شوریده پولیده کرد رو پرت کرد گفت علی خجالت نمیکشی یه جوری خودتو درست کردی که ناموس مردم داره به تو نگاه میکنه گفت عاشق روز روزخون تو حمدان میگه رفتم یک از داهاتای حمدان که داهات خوبیه و خیلی هم شهید داده من رفتم توی این روستا رفتم اونجا روزه بخونم اومدم که برگردم دیر وقت بود درای دروازه رو بسته بودن خدایا بخوام بمونم که حیوانای در رنده اینجان بخوام برگردم دهات فردا صبح باید مسجد جامع سخندانی بکنم اومدم در به سرم واو واوه چی شده علی گنداوی قمه به دست عرق خورده عروده کشون با رفقاش پشت دروازه دادن حالا بیاهو درستش چی نمیشه برگشت، نمیشه وایساد نمیتونم برم تو دیگه دل زدم به دریا خدای توکل بر تو در زدم علی جندوبی درو باز کرد اروده میکشه قم به دستش تو منو نگاه کرد گوشه قبا منو گرفت منو کشون برد تو باو هاش این باشم اینجا چه غلطی میکنی گفتم رسش علی جان رفته بودم یکی از دوستهای اطراف روزه بخونم و شما نوبرش آوردید سال به 12 ما روزه روزه روزه چه خبره؟ از این حرفها اخیرا هم میزنم به بعضی از هیاتجا چه خبره شنبه یه شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه چه خبره که تو یه نفر به اونایی که میرن یه شبانه روز پشت در پشت درای در استادیوم وای میستن معطل میشن که دو تا تیم میخوان این توپو بزنن تو اون دروازه اونم میخواد اونا خسته نمیشن حالا فقط میان گیر میدن که شماها چه خبره هیچ خبری نیست یه نشات اینجا به ما میدن که ما این نشاطو هیچ کجا پیدا نکردیم هر که هر چی میخواد بگه بگه این هم اینجا چی کار میکنین؟ راستش آ... علی رفته بودم روزه بخونم او ول کنید بابا این همه روزه چه خبره مگه؟ گفتم علی فرق میکنه آخه او چطور؟ گفتم امشب شب اول محرم اببدد عبدالله حسینه؟ آها علی عرق خورده یه مست لایعقل قمه به دست تا گفتم امشب شب اول محرمه انقدر با سر تو این دروازه زد گفت علی خجالت نکشیدی محرم اومده تو عرق خوردی ای بی حیات همه وقت گناه تو محرمم هم گناه همه وقت گناه تو مارمزونم گناه هی سره رو میزنه به این در یه خورده آروم شد قمره به دستش گفت, گفت. شیخ به خدا تیکه تیکت میکنم همین الان باید بشین اینجا بر من روزه بخونی گفتان علی پدرت خوب مادرت خوب روزه مستمعه میخواد منبر میخواد چایی میخواد بسا همینجور که نمیشه گفت این عرفا تیکه تیکت میکنم هر بلاییم میخواد سلام بیاد بیاد باید بشین الان بر من روزه بخونی منبر میخوای باشه چهار دست و افتاد رو زمین گفت خودم میشم منبره بشین گوش من شده کن روزه عمرش بسم الله الرحمن الرحیم الله دوباره اون نشو گفت شیخ ببین تجهیزات تو بزاسم این تیک تیکت میکنم منو معطل نکن صاف منو ببر در خونه قمر منیر بنی هاشم اول فضل العباس بگو علی اومده نشستم رو کمرش شروع کردم بدون مقدمه ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سقای حسین چقدر به من بگی گرفتارم چقدر به من میگه حاجت دارم مشکل بسم الله امشب دیگه شب عبر فضل شد یا علیه سقای حسین یه وقتی‌ام دارم بالا پایین میرم نگاه کردم دیدم علی گندابی عرق خورده‌ی مست داره به پهنای صورت عشق می‌ریزه گریه می‌کنه چیکار میکنه نام اول فزو این روزم که تموم شد بلند شد دست منو رو گره شیخ ممنونه روز خوندیم میشه یه کار دیگه برابن بکنیم من خجالت میکشم گفتم بگو گفت میشه روتو تو بکنی سمت نجف امیر المومرین به آقا بگه آقا علی قول میده دیگه لب به عرق نزنه قول خدا خداحافظی کردیم رفت خونه اومام رفتیم خونه فردا صبح رفتیم مسجد جامع نمازو رو که خوندم منبر رفتم گفتم مرد مجده بدم علی گندابی توبه کرده. کسی <تصحیح> <تصحیح> قبول نمی کرد که روزه که تموم شد با جمعیت رفتیم در خونه علی گندابی در زنیم زنش اومد بیرون. گفت بله گفتیم علی و کاردا گفت علی نصف شب اومد ساکش رو گفت زن میرم یا آدم میشم بر می گردم یا دیگه بر می گردم. کجا رفت؟ گفت فقط به من گفت جایی جز کربلا ندارم میرم کاربرلا. <تصحیح> آخه کربلا <تصفيق> میشنوین بعضی را دارم میرن کربلا جگر ها مول میشه <میشن> <میشن> <میشن> به خدا نمیخواستم بگم الان تو دفتر نشون داد میگه ببین ویزا کربلا هم گرفتم دارم میرم کربلا <میشن> خوش با رفتی کربلا خدا وکلی روبرو حرم اماموسن بگو آقا یه مش بر بچه ها توی عرک خیلی دلشون میخواد بیا یه ویزا بلند دست جمعی با هم دیگه بریم صفا داره بینال حرمین اونجا رو خاکا بشینیم بگیم این مدتی علی اندابی اومد کربلا مقیم کربلا شد خوب که زنگار از دل ازدودوده شد بلند شد اومد نجف میرزا شیرازی تو نجف داره نماز میخونه علی گندابی صف عقب بود بعد کم کم اومد جلو، اومد جرا اومد جلو. تا ملازم میرزا شد کنار میرزا هر وقت میرزا وارد حرم میشد میدید علینی سب میکرد تا علی بیاد یه روز دارن نماز میخونن خبر دادن میرزا فلان آلم تو نجف مرده گفت باشه قبری همینجا زیر پای زائرین امیر بکنید به اینوستلاته هم بیارید من نمازشو میخونم نه بعد از نماز هم دفنش میکنیم نماز اول خوندن گفتن میرزا قبر آماده شده اما اون عالم دوباره زنده شده قلبش شروع کرده به کار کردن میرزا <میزا> گفت رو قبرو رو نفوشونید یه حکمتی تو این قصه هست باید باشه نماز دومو که خوندن السلام علیکم و رحمت الله و برکاتم گفتن میرزا <"Mirza>, چی شده علی <میزا> گندبی سر از سجده بلنده میکنه اومدن تکونش دادن علی علی دیدن علی افتاده مرده از دنیا رفته بعد میرزا لبخند زد گفت میدونید علی تو سجده آخر نمازش چی گفت امیر و واسطه قرار داد خدا رو قسم داد به آدروی علی گفت خدایا زیر پای زائرین امیر یه قبل خالیه من برم اونجا ببینید گریه من اول فضا بکن